تشمیل عبوات های به هار دل دو دل به جا نباشد به هار دل چشرتی دو دل به جا نباشد. نباشد از اون دل بعد به نباشد در این بحا ایسنم بیان که آف شتی کن که جنگ با من حجین روانم باشن صبح در بو بول بو بعد در افت به گر خدا نوزنی نخون نو رو مهجبی نخون رو اگر که با این دل حدیم تو حد و بسدی خبیل به من و به من چرا نشستی؟ چرا دل را خبید من نکی در برمد آمد وفاء یہ ہیش اے